جلسه بیست و از رسال اوستاد سلام برحمن العالمین و السلام علی با اشتلاف مستند با ساید حضور حضورت قاعده به این که قوه تجربی ثابت منطقه رافعی میاد در بعضیت موارد این خوب رو برمیده به این قاعده به وجود محتضی خوب و همچنین وجود رافع رافعش هم همون مسئله واقعی یا حسن زادی که در اون فعل متجربه بوده در جوابه از ایش باید شده به اینکه اولا قبعه تجربی و به موجود ولی اعتبارات نیست ثانی هم منابرای فرد اینکه به موجود ولی اعتبار باشه قبعه تجربی از ممارد رافی نداره بخواد اینکه اون فعل و تجربه حسنی نداره تا این رافع غمه باشه و عدم حسن فعله متجربه به خاطر اینکه که اختیاریه اختیاری بودن دوتا معنا داره یکی از معنی اختیاری اینه که مبدود باشه یعنی در مقابل ازداری معنا دوم اختیاری اینه که متفت و باشه معلوم باشه در مقابل جهل و بمفلن این فعلی که ما در ضمن تجری انجام دادیم همون واجب توسلی در مثال سال فسول و نمیتونه متصفه به وزن باشه غیر به غیر اختیاری به معنی دوبومه چون مقفول و و وقتی مقفول و باشه بنابراین اختیاری نیست و حسن و اختصاص به افعال اختیاری انسان داره از حسن ذاتی نداریم تا اینکه بیاد رافعه ای قومه تجری باشه حالا این بود که ولو اون فعل واقع شده در خارج در زنده تجری متصر به حسن و نباشه به خاطر غیر اختیاری به معنی دونگومه لیکن بر یک مثل با اون مصد حدیثاتی یعنی ایک از سر و بعضیه شرتباط به اتفاد و علم و اختیار مکندر نداره نماز فی نفس خوبه که من این داشته باشم که نداشته باشم با اون مصد ذاتیه یعنی در وقت خوبه تجنبیه اگر کسی این اشکال رو متوجه مسمنه بکنه به دفاع از سال از و دلیدم بیاره برای اینکه خود مصنف در رد دلیل الزذواری قائل شد به اینکه فعل جمله غیر اختیاری موثر هستند جوابی که مصنف داده ولو استراب داده یعنی اولش پنهیرفته که امر اختیاری میتونه موثر باشه جمله و من تو جزوه نوشتم که فقط افا در مصنف مقام جواب ان دلیل به محاسره او که عمر غیر اختیاری معصده در عدم بر بنابراین هر دو یعنی هم ساید بسول هم مصنف و جمعه قاعده به این که عمر غیر اختیاری میتونه معصد باشه بنابراین مصنف برگرشته به طرف ساید بسول و قاعده به این که عمر غیر خیاری معصده و به مصده میاد خوبه تجربی رو برمیداره منتها در صفحه آخر خاطر استرابه که در که عدمات مصنف بوده این طوری نوشتن و هر یک امکن از به تأثیر مصد زهد فی رفت قبه تجربه املا فی خلافون بین الالمین یعنی زهد خصول به تأثیر و ظاهر مصنف ای و تأثیر بروند زاهد شکه و که از هم عدم التأثیر اندو فی رفت القبه چرا به خاطر که مصنف قایل شده به عدم مقتضی خوب در همون ابتدای امر هم. چون در تجربی اصلا قایل به خوب نیست تجربی خوبی نداره ولی اصاحب میگه تجربی قبیه رافه میاد اون خوب رو برمیده مصنف از اساس قایل به خوب نیست نه قوب نه قوب بنابراین جوابها بر وزان هم نیست مصنف اختلاف داره با سوال در همین مساله. حالا اون اتحایی که شده بود اما من از بیرون گفتم مضفوط و مضافنه در فرق بینمانعنفی و بینماتقبتن یعنی کسی خیار نکنه مصنف با سوال خصولیه که اینها با هم بیگه فرق دارن مصنف مدعی منعه یعنی اصلا این تجربی مانع داره از اینکه که به قوه بشه مانع داره اصلا قبعی نداره ولی فصول مدعی رفع ولی فرق بین اما واضح فرق بین رفت و من هم واضح. این در شروع و هواشی چیزی ننوشته من یه مصطبی اضافه کردم، هی سو این نه حالا فرق بین رفت و دفت چیه نهای چیزی که در شروع اومده اینه که دفت از حل از رفته. پیشگیری بهتر از درمان اینطوری معما کردن یعنی در از حل از رفت ولی این جمعه اینجا نوشته هم بهتره قیز اندر امر غیل اختیاری یو از سرو فلمان یعنی امر غیل اختیاری تأثیر در من داره ولی تأثیر در رفت نداره اینه من مناباشه قاید به تأثیر امور غیر خیاری باشید اونها تاثیرشون در خصوص منه که نذارن قبعی آرزه برای این فعیل متجرد به بشین ولی دیگه اگه آرز شد رافعیت نداره، عمل غیر خیاری رافعیت نداره ولی دافعیت داره و ما هازا مارا فی مصنفی هازالمه یعنی منظور مصنف همینه هم و این سر و کلماتو و قصد بیان محصول اولین اینو با دفتت ها هیچه هستر از شده اینو تکسیر کنن رو هر نحوی بخونی تا ادامه شد نبیه. نه دیگه همه گفتم بین خود آشتیانی خود صاحب قلائه یه مدعی منه یعنی اصلا نمیذاره قهری حرز بر فعل متجرب واقع بشه مدعی منع مانع داریم مانع داریم اصلا نمیتونه بیا نه دعواش کرده که من دارم میگم البته دیگه ایشون میگه مانع داره مثلا خب یاره فعل متجرب مدعی منع همه تصدیه کردن الان پنشیشت از هوایشی رو من نگاه کردم همه مدعی من هم. گفتن خود شیخ اینطور تغییر کرده در کلاسش گفته من مانعم ایشون رافع مانعی نیستا خوب یار از این فیل نمیشه اگه غیر این در شروع نوشته باشن اضطراب به طبعی مر این آخرین سفر رو با دلقت بخونه نیست دیگه فایل نیست دیگه ببین منحصول مجموع نظر شیخ چیه اصلا قبهی در مورد نیست نهایت مذنبت و غلایی <تصفيق> یعنی حتی قبه فایلی هم نداره قبه فایلی رو ناینی آورده مطرح کرده از کلماتش در نمیاد چون بین قبه عقلی با زم و فرق فرقه مصنر گفته مزعمت رسو سریده این آدم آدم بزدادیه حالا قبر فایلی داره نه قائل به قبر نیست حالا نظر من اینه دیگران ها شما در نظرش چیز دیگه باشه کاری ولی خب در حل مرزره که از استراب در بیادن که این من منعه ای اون متی رفع یعنی چی یعنی اگه امور غیر اختیاری بخواد مؤثرم باشه مؤثر در تصعه مؤثر در رد نمیتونه باشه بنابراین قول سالفصول رو قبول نکن رفت اینه که کسی بیاد اینجا و ما نخواهیم بیرونش کنیم ولی دفعیلی از نذارم بیاد بس فعل خیل متجربه خوبی نداره مختزی نداره سالفصول قایل به مختزیه بنابراین شیخ به اعتباریه سالفصول قایل به دومی اختزاییه اصلا محسوسه هم از نظر شیخ هم از تمام کلمات فصول حصول قائل به اختضاییه شیخ قائل به اعتباریه بنابراین اقتضا نداره فعل متجربه قویی باشه در نظر شیخ قومش کجا بود نه قوم فعلی نه قوم <تصفيق> <واله؟ تصفيق> <تصفيق> در داخل همین دعوام یه مدفوعه دعوا رو دفتش کرده از خلال دو امر مزارفنه در فرق جوهری بینما نحن فی که مقام رفع و بینما تقدم که مقام نصب بود من اونجا گفتم مؤثره که خیال نکنه من حواسم نبوده امور غیر اختیاری گفتم مؤثره ولی برا دفعش ایشون گفتم امور غیر اختیاری در رفعش اون خب بین من و صاحب فرق دیگه فرقش هم جوهریه کمال نوع فعل متأمل تأمل میکنه این نیست حالا نظر نهایی شیخ اینه. نظر نهایی شیخ اینه که قائل به دفع و تصریح کرده شاگرداشم نوشتن تو هوایشی قلائد نوشته هاشتیانی نوشته اوسر نقل کرده و گفتن که قائل به دفعه ولی چرا چون گفتن دفع از طله ولی اون نکته اساسی اینه که امور غیر اختیاری تاثیرش پرجمله است یعنی هم مصنف قایده به تأثیره هم صاحب فصول منطقه هم مؤثریت ها فرد صاحب فصول میگه مؤثری در رفع شیخ میگه مؤثری در درده مدفوعه تون به اندالعقل مستقلون به قومه تجربی، به مثال المذکول یعنی این مثالی که صاحب فصول آورده بود که مولا هم کنه به قتل کافل و خیال یک شخصی رو که های کافر یا کافر نیست و تجربی بکنه و نکشه و شخص در واقع مؤمن ماشه و مجرد و دو و به تحریک قتل المؤمن فی زم نهاز خارجی الخارجی المتجر رابه به معل به انتر کلقه من غیر اختیارن لا یتصف و به حسن ولا قبه لا یرفع قبه به غیر اختیاری بنابراین قیل اختیاری به چه یعنی قیل التفاتیه. نه که نیست قیل التفاتیه. به فیلی که من اتفاق نداشتم اختیاری حساب نمیشه. حسن مخصوص افعال اختیاریه. یعنی که برای معلوم باشه بچهش. و ولذا و لذا به که فیل مجهول به حسن نمیشه و با این فیل مجهول الانوان قبه تجری برداشته نمیشه عقل حق میکنه به قوه که ولو در واقع سبب نجات مؤمنی باشه و کازب علم به این نداشته باشه ولذا یحکم العقلو به قبه کیز و ذرم الیتیم ازنزم مئده ایه ما ما ما یسفه هما مصدحته از در فاید و بزاله یعنی و افتی من جاهبه به این باشم که این در زمنش نجاتی مومنی هست یا این که در زمنش یه مصدحتی هست اگه باشم قبهش رو عمل نفت نمی کنه واقعی رو داره و این کاشه فرز اینه که تأثیر پل جمله است و بین خودشون و ساید بسور فرق بین دفع و رفعه رضا اگر یک قبهی از تجربه خواد بعد از وجود مختزی، مرتفع بشه نیاز به یک رافعی داره به اختلاف سای و مسنل در این که رافی، اومده یا رافی نیومده اگر سای پسور مدقی باید اثبات کنه و رافعی نداریم به خاطر فعل مجبول انوان به حس نمیشه و اون مثل حد ذاتیه هم جمله در داخل دعوا آورد ولی جوابی از اون مثل ذاتیه نداده این نگفت اون مستهد ذاتیه پس چی شد ما میگیم اون فعل مجبوله لعنوان حسن ذاتی نداره قبط جدی و داره. اون مستهد ذاتی چی میشه اونو نیاورد لذا در این جزوه در ضمن در قلطو آوردن و اما مستهد ذاتیه یعنی غیر اختیاری و یک میکنه تأثیرها فی جمله فی رفع قبط تجری، این در صاحب فصول و نزد مصنف این, این طور نیست بعد یه مطلب دیگه هم بگم چه باز؟ بلا از باب عدم مختزیه از باب عدم مختزیه عطا موبین نیمده که کاری به مصالح هم نیست قم نمیمنده که از جهت ذاتی الان منده دوا همون دیگه کجا بیاد قابل بشه؟ از جهت ذاتی رو یعنی اثر واقعی رو قابل بکن خب از در اعتباریات راه نذاره که حالا یه جنبه‌ای در اینجا نوشتم ما یک این دو تایی حلش کنیم خیلی اون فایده نداره می خوام کنیم کلامشون و به جمله یه مطلبی هست ان با المقتضی لیست القباب لا بتمن یکون اختیاری باید اختیاری باشه بر همه مبانی کلامی مقتی باید اختیاری باشه و عمل امنه و منه فلا یز من یکون اختیاری ولی مانع لازم نیست اختیاری باشه بنابراین صاحب فصول باید اثبات کنه که امر دیل اختیاری میتونه مؤثر باشه در رفع یا نه مصنف لازم نیست اثبات کنه به خاطر که مانع لازم نیست اختیاری باشه مانع دیل اختیاری هم باشه اشکال نده و عدم مصادفت دیل اختیاری و چون مانه کار نداره که خود خودرو خصوصی عالیه اینجا یعنی بعد خود خودروی تو لندن یعنی تو تجاری این بدی نکرده تو تو تو تو اینجا میگه که علم نه اونجا گفت که معلوم نیست که این شخص یه شرب خمر داریم یه شرب ما داریم یه شرب مقتول خمریه داریم هیچ کدامش محقق نیست هیچ کدام از این ستانی شرب الما اشک اتفاقی نبوده شرب الخمرم واقعا نیست شرب مقتول خمریه هم که تنیبیت داشت چیزی اتفاق نیفتاده اونجا من اتفاقی علم و جهنه کدومش این هم برد علم و سه هم برد خواهر نشه اون رو که تیگه اونای قاعده یه اون و میگن اونطور نمیگن اختیاری باشه به معنی اتفاق ولی زا یه کمون اقروب و ضرب یتیم ما یا سفه هما ازن مسلحت از ازا جهدن قاعدو به زاله یعنی اگر با اون انزمام هم جاهه اون فایل جاهل باشه باز متلطب میشه به خاطرین یا یه دیگه واقعی یا مستعد واقعی بوده حالا که ها مصندفی نهایت شیم بود یعنی از حسن ذاتی و مستعد ذاتی این استفاده کرد که خلاص ما نمیدون قایل به رفت بشیم امور غیر اختیاریه رافیت نداره محصل کلام در نظر شهر شاهد دیگه قبله آخر این حرفی که زده بود لا یرف و خوب همون یعنی تا نداره خوب رو بر نمیداره به خاطر که مجبوره لینوانه و چون مجبوره لینوانه خوب رو نمی داره و خوب میمونه یه شاهی آورده که عقل خوب میکنه به خوب هی ازن زم میدیم ما امایسفه ما الى المصلحه در فاعل و بذاره اگه ما جاهل من مصلحت و حسزادی باشیم باز ارغب به کمش میکنه چرا چرا که به همون جواب که دو روز داریم میگه که به خواهد اون وضعش برای معلوم نیست حسن ذاتی نداره مصیلت ذاتی هم نداره باشم محصل نیست مجهوره الان هم داره میگه که ما به اون مصیلت ذاتیه به اون حسن ذاتی فائل به خواهد جاهل باشه حسنی تولید نمیشه بیاد این قب رو برداره به زا یحکم العقل به قب هم فیل اون مصیلت ذاتی به درست نمیخونه بخواهد این ما ذاتی داره. باید بدونم من ذاتی داره تا بیاد قب خوبرداره خب اگر این طور باشه من بدونم من ذاتی داره خب دیگه قب این ما دیگه تجربی نمیگن یعنی اشکال باید این طور باشه ایشون میگه تجربی طبیعیه. به خاطر اینکه ما را بید از حسن ذاتی و مثلا ذاتی نداریم بیاد این قب خوبرداره به خاطر اینکه اون مجبور و برا ما اگه مجهول الانوان باشه خب حسن ذاتی مصدر ذاتی،, ذاتی نداریم قبه در میمونه ولی اگر قصد برگرده به اینکه من علم به اون حسن ذاتی داشته باشم یا علم به مصدر ذاتی داشته باشم بخوام برای اون انجام بده من این اصلا این تجربی نمیگم مفروض که من باید جاهل باشم تا تجربی محقق بشه دیگه الان کل تذکیه مصنف و یکی از دو طرف رو بپذیره یا باید قائل بشه به رقع که صاحب اصول میگه یا قائل بشه به عدم قبه تجری مطلقا یعنی شخص یا عالم یا جاهل اگر عالم باشه تجری اتفاق نمیفته اگر جاهل باشه اون مسلحت ذاتی باید تأثیر بذاره لذا قول صاحب اصول بهتر از قول مصنف چون مصنف با فرضل که اون مسلحت ذاتی نامعلوم بر ما اومده باز قائل به قبه تجری شده چیکار کنیم ما عبارت هاش ما چیکار کنیم این برهان که نیست عبارت هاش ما یه طرفش درست کنیم یه طرفش خراب باشن. الان بهر الفوائد اوثق نمی دونم غلائد چقدر میان میگن این تعبیر باید اینطوری باشه تسامح داره اوثق خیلی میاره که میگه تسامح داره عبارت چیکار کنیم حالا با ادب داره میگه تسامح داره ولی اشتباهه غلط تعبیر نباید اینطور باشه میگه تسامح در تعبیره قرآن باشه آدم بحث میکنه. کنه دیگه ما همه کتاب اینطوره که هم همینطوره این همه هاشی به کفایی می به خاطر چیه به خاطر که میگن این بیان این لفظ قاسر از عدای مقصود دیگه نمی رسونه و نظر نهایی شیخ عدم قبه مطلقا فاعلی و فعلی نهایی دیگه مذنبت و داره حتی قبه فاعلی هم قائل نیست به خلاق ناینی که قائل به قبع فائلی شد نه قبع فائلی مذنب اون از احکام عقل عملی مذنبت احکام و قلعاییه حالا اونها دارم توی برگه می نویسیم همه رو که آقایون خلط نکنم بله اون معانه که در کتاب ها اونها رو خب مفتود اینه که دقیق نیست بیگه اگه دقیبو که نوبت به جهان نمی رسید اگه بنا بود اون معانی درست باشه ما خود حسن و در اصول فقه و علم منطق خوب فهمیده باشه می این همه گیر نمی کردیم جهان مشکل ما اینه که اونها به هم بر کردن دیگه چهار تا معنا براش ذکر کرده یا خود حتی ملا صدرا اومده مثلا عقل 6 تا معنا ذکر کرده آخرش هم مشخص نکرده اون عقلی که در کافی میاد کلومه یعنی در خود شرح حصول کافی 6 تا معنا کرده و ها همون میشه به ماه ها دیگه یه ماه تاخیری نداره عبارت مصنوب اینطوریه هر ضربی که درست کنی از اون مخران. مثل می بسه تعبیری که میوالمنین در نظیر بلاغه داره که کُنَامُ هِنکَتْ مِنْ جَانِبِ التَّحَرُّكِ مِنْ, من جان به النَّامِع از یه طرف به دیگه یه طرف قاره میشه نمیتونیم اینا رو حلش کنیم خیلی بنابر توجه هم ندارم ولی خب دقت‌های رو در میاد این تعبیری که الان اخیرا داره میگه اگه ما قائل جاهل به مسئلت ذاتیه باشیم را نداریم خب کشیدن به طرف ساحب اشکال برش وارده ولی چون نظر شیخ رو میتونیم یا اینا تصامیه در تعبیره نه خبه چیه ببینید اخوه بیرین یه اصولی داریم اصول موضوعی یا متعارف به این که قبه در حیطه احکام عقل عملی میارن نه در حیطه احکام اقلاهی تقوی اقلاهی نیست مذمت اقلاهیه اونان یه اصول متعارفیه دیگه تبقیه این دارم پیش میان در کتاب های کلامه خب بهتر اومده تا کتاب های اصولی ما و اصطلاحات داریم بحث میکنه میگه ولاره مزمت اون قه جایی برنده میکنه. تقبی هم همون مزممت. هفت داره نه اینا حاک فرق داره. لذا اصطلاح بلید که در مقالی دیگه موط گفت اقلل عملیم چی بگیم تقبی نه مزممت. بلا میولم حالا وش وزیش یه وش دارم می نمیستن. به صورت مبسود که آقاینها میبراشون همونهه معلومه که خیلی از مساائل بر آقای مبهمت. یعنی با اینکه ما الان یک ماه داریم در مورد قط بحث میکنیم هنوز معنای حجیت قط معلوم نشد و حق میگن به آقای اون یه مبادی میخواست این مبادی میخواد انسان معلوم بشه که چی میخواد بشه بله که بناباشه این متنو رو ترجمه کنیم بریم و فهمیلی باشیم که همولان شیخ انساری بودن، نمیشه که معلومی که اینها را خوندیم ولی متوجه نشدیم حتی در حدیت قدر بیلن آقایون به جد نمیسیده معنیش چیه قدر حد جز از النوزک رواز القائل یعنی سای فسور بعض کلماتی در ادامه اومده باز یه حرف دیگه زده شیخان سالمی این حرفم از اون حرفاست اومده یه حرفی زده بر خلاف مبانی کلامی این تجربیر ازاساد بل محصیت الواقعیه تداخل اقابه ما اگر تجری کردیم و در لوح محفوظین حرام واقعی بود مساده شد با یک حرام واقعی ولی در واقع فقها ها داده بودن به وجوبش یک چیزی حرام واقعی بود فقها گفته بودن واجب اینیه ما آمدیم تجری کردیم در این مورد یا بالعکس تجردی کردیم و سر از یک قرمت مواقعیه در, در رو محفوظ در این موارد میگه اقابشون تداخل میکنه این تداخل اقاب یعنی یک اقابه یا دو اقابه تداخل میکنه قابش تداخل میکنه یا خودش تداخل میکنه این رو ایراد گرفته میگه این فهمی نیست مقاله به تداخل اقاب بشیم در این موارد درست نیست برای یک فعله قبیح خارجی دو تای اقاب باشه ولی ما بیایم بگیم اینا تداخل کرده شده یک اقاب دو تای اقاب منشأ میخواد و منشأ نداره هرگز خودش اگه بخواد مستز اقاب باشه نسبت به این بین خارجی معذرتن همینطور بنابراین یک ول نمیتونه دو تای اقاب داشته باشه برخلاف تواید باب ثواب اقابه بلند يقول معنا معسلون لهذا الكلام معنای معسل این حرف نداره یعنی تداخل چون تداخل یا وحدت اقاب که معنا نداره بخاطر اینکه تجربه خودش یک الوان مستقلیه برای تقدیر برای اقام معنا نداره به وحدت اقاب باشیم و اگر مرا تعدد تعدد اقاب باشه دو تا سبب میخواد نسبت به دو تا و ما نداریم در خارج لذا علاقه در تقدیرین مشکل میشینه بارد ولم یعلم معنن محسن لحاظ الکلام از معکام تجربی انوانن و سبب مستقلن استحقاق الاقاب لا وجه لتلاحول این اوریده به تداخل وحدت و اقام یعنی اگر مراد از تداخل وحدت باشه معنا نداره تجریح خودش یک سبب مستقلی اقام و میخواد. میخواه فنهو، <تصفح> یعنی وحدت اقاب ترجیح بلا مرجهه چون این یه دون اقام اومده یه دون اقام که اومده فرشته های اومدن اینو بر کدومش میخوان اقام کنن از تجربیه میخوان اقاب کنن و معصیت میگه چرا برای من اقاب نکرد اگه بعد معصیت میخوان اقاب کنن تجربیه صدایش درمیون به این نهو تجربیه اون بلا مرجه به خاطه اقاب یا بر تجربیه یا بر معصیت و علاقه در تبدیل این تجربیه بلا مرجه و سیدی <تصحیح> و این دلیل بر عدم تداخل و زیدی دلیل بر عدم تداخل و زیدی و به روایت آتیه انه علا رازی و علا داخل اسمین یعنی کسی که رازی به معصیت دیگری باشه یک گناه کسی که داخل در گناه باشه و مرتکب بشه دو گناه یکی اینکه این شخص به معصیت یکی همی که خودش محصیت انجام داده شخصی که بخواد مرتکب گناه بشه دو تا اسمه کسی که راضی بگناه دیگری باشه این گناه و سیجی فقه روایت انهو علا راضی به بهد قومین اسمم واحدم و علا داخل به محصیت اسمین خب اون بس روایت رو باید بیاییم تفسیرش کنیم که خودش شیخنی ها تفسیر میکنه و این قریده بهی اگه مرادش از تداخل تعدد اقابه یا زیادت اقابه یا زیادی کمی یا زیادی کیفی افتستن اون در راهای جهنم که خیلی داختره یا زیادی کمی بیشتر از آبش کنن یک ما دو ما بیشتر نگردن به نوریدن تداخل اقابون زائدون من و کیفن علا اقاب محض تجربی فهازا لیست تداخلن في المصطلح کلامی تداخل نمیگن و بخاطه اقابی زیادتر شد دیگه لعنه کل فعل اجتمع فیه انوانان من القبه یزید و اقابهو ما ماکان فیه احد الانواني. اگر یک فعلی مجموعه دو عنوان قبیه باشه از آبش بیشتره آبش بیشتر از اون که یک عنوان قبیهه اگر شمسی در ماه مبارک با آب بخواد افسار بکنه روزشو بشکنه خوب یک اما ولی اگر با آب،, آب تسکی باشه تشدید میشه اگر با شرب خمر باشه تشتیق میشه این طوریه. حالا به جمله هزا رو قبول نکرده بله تداخون نشیدم بله خودش داره میگه عنوان مستقل نیه اجرزی در ظاهر بوده واقع محسیت بوده نه خودش داره تشجیر میکنه دیگه مصادفت یاد با یک حرام واقعی محسیت واقعیه یعنی محسیتش برا من معلوم نبود محسیت بودنش برا من معلوم نبود من خیال کردم دارم نماز می کنم این از شراب خوردن بزنه معصیت واقعی نه مسیت ظاهری تجریه ظاهری با مسیت واقعی حالا یه بحثی باید مثرفی در رابطه با بحث کلامی تداخل اقاب این از نظر مثلا ملا صدرا و متکلمین چیه تداخل داریم نداریم چون بحثش در رسائل وافی نیست الان واجبه شده این یا وحدت اقاب یا زیادت اقاب کنون باشه قبول نکرد ولی یک بحث مبنایی میخواد در اینکه بلجمعه در حد دو صف دو صف ما بتوییم که تداخل هست یا نیست اگه هست چه من؟ با اون خاطر اونهایی که میان با مثل ملا صدرا اصول کافی رو شرح میکنه از نعمتهای خداست یعنی چقدر اینا دفقت دارن با اون دقت عرفانی و شهودی و فلسفی میان تفسیر میکنند که اصلا زیبنده میشه برای اصول کافی اصول کافی قیمت پیدا میدن و ایلکه اصول کافی در از اخباری دوست میشه یعنی وزانت اصول کافی ما الان فعلا به این شرح ملاسد یا مثلا شرح دعای سهر توسط حاجی سبزهاری اینها واقعا موجب وزانت این عدیه و این معارف میشه حالا از نظر اینها که خبریت این فندن آیا تداخل اقاف داریم یا نداریم به نظر میرسه مباحثی که در درسال امسال این ها میاد یه مقدار قاصله نمیتونه اثبات بکنه و از سر از مسادراتی در میاره. این شبه فردا فردا نه با تحتیل یا تحتید در رابطه بار این حدشیت قد یه نکته نهایی رو من بگم که اینها رو تو جزوه ها آوردیم تو جزوه ها نوشته شده حالا از بیرون خودم هم بگم که معروب باشه چی نوشته بودیم بعضی ها گفتیم که مثل مشکور که ملا که ملاک در حدشیت قد کاشفیت خیلی هم اصرار دارن خیلی خیلی اصرار دارن چه مشهور و چه حد تاشایی سر به اینکه یار در حدشیت کاشفیه. و اگر بناباشه ما گفتیم کاشفیت ملاک حدشیت باشه هر قطعی حدشته کسی هم نمیتونه معاخذه بشه هر شخصی به قطعش عمل بکنه چون براش حدشت بوده کاشفیت داشته نمیشه معاخذش کنه از هر عملی تبریل میشه عملی یزید تبریل میشه معاویه تبریل میشه اینا به عمل کردن یا حتی های که شراب میخورن یا گناه میکنن اینا ها به قطعشون دارن عمل میکنن اینها رو نمیتونیم با این مبنای مشهور بین فلاسفه و متکلمین و اصولیین و فقها ها نمیتونیم جواب بدیم بنابراین معیار نمیتونه که باشه و این نیاز به این داره که یک بیانی بیاد اینو تفصیلش کنه خضم بشه یعنی تقریب بشه به ذهن ما و گفتیم هر پسی دوتا چه داره یکی کاشفیت، یکی طریقیت و طریقیت دیل از کاشفیته. کاشفیت کاشفیت ذاتی طریقیت اختزایشه و اگر کاشفیت باشه کاشفیت ملاک و باشه احتمال اصلا نباید نتیجه باشه هیچ احتمالی شما احتمال هر خطری و بلی نواق نتیجه باشه ما احتمال میدیم قیامتی باشه منجز نیست احتمال میدیم که این سفر مضر باشه منجز نیست احتمال میدیم این من این مزر باشه منجز نیست اصلا به هیچ احتمالی انسان نباید اعتماد از معاد و قیامتی را همه شونه به خاطر در این موارد احتمال قائم دیگه احتمال منفجز نیست کاشفیت نداره همچنین قطع تا باید حتیت باشه قطع متجربی باید حتیت باشه قطع وصفاسی باید حتیت باشه وصفاسی باید ادامه بده کارشو چون یک شعبه بالا یا جنون دیگه باید ادامه بده قط داره خیلی هم قلیزشو داره قط داره که وضوع معقق نشده یکی داشت نه بود که چهار ساعت طول میکشید وضوع بگیر و بعضی که دو ساعت طول میکشید من خودم تو مزیخان دیده بودم از ساعت ده نیم از تا یک دوازونی میناف میتونست خلاصه آبروی خدا رو بردید آبرویا روی آخوند و حوزه که هیچ خدا رو داری میبری آب نماز نخون گناهش به گردن من یا بعضی از زنها که وسواسی میشن و زیادم هست مریضیه دیگه قفلش باید حسیت کاشه یعنی به قفلش باید اعتناق کنه اگر کاشفیت خوب کاشفیت داره دیگه از چرا شعاره میگه این شیطانه در روایات اومده وسواسی کار شیطان رو داره میکنه عالم میشه قاعده نداره بانکی کاشفیت داره کاشف از اینه که وزو نگرفته کاشف از اینه که این قسط نکرده هنوز و گرد و خاک خیابون نشسته رو اما ها رو باید به بره اگر کاشفیت ذاتیه ملاک باشه هوا با اینه قسط کنن اگر کاشفیت ذاتیه در ذاتیتش گمش شک نداره کسی منکر ذاتیت کاشفیت قد حتی خود ما گفتیم که به ما وقت کاشه بان و گفتیم این قضیه ای اول در مقام اثبات ذاتیات اگر کاشفیت ذاتیه ملاد باشه حدیت میشه عقلی خوب آمانی دقت کنن حدیت میشه عقلی و منجیت عقلی غیر قابل تخصیصه چون از ارکام عقل نمیشه تخصیص بزنیم وقتی نشه تخصیص بزنیم هر قاطعی در عملش معذوره ابن مدرم معذور شمر معذوره یدید ما ماها در گناهانمون معذوریم به قاطعی که قصد برای هر کسی که حاصل میشون اجتبه به قاطعی کاشفه و شخص قاطعی معذور به عذر عقلی چرا چون کش تمام ملاج برای معذوریت در نظر به که کاشفیت ذاتیه و اگر مدار کاشفیت باشه، بحث موضوعیت پیدا این معنا همین مثلا ما باید این که بشه، این که قرم نداشته. میشه فرار از نزاهه. آره اینا دیدیم مودنا، اینا تقوا نداشته. حالا چی داریم بحث می‌کنی؟ بحثی این رو ما منبری ها می به خاطر که در بعضی تحویات اومده به اندار یقین داشتن یعنی به قطرشون یعنی تنها راه ادامه حکومتشون کشتن ما می میخواد خوب باشه کارش می خواهد برسه داشت. قطر داشتن که اینو باید, باید بکشن یا نه نه اینکه قطر داشتنی آدم بلیه اونو ما برس میکنیم. به اینکه باید بکوشن باید بایدش بخاطر اینکه نش نمیشه دیگه اگه نکشیم فرق نداره گفتم دوای چه نفسانی چه وحیانی فرق نداره شبهه نکنه هیچ شبهه نداره ابدا در هر جای شبه گردید اینجا که می نیستی شبهه را بزاری بیو شبه نداره اینا رو من گوش یک کردم آقا اینا قطع داشتن باید بکوشن حالا ما بیایم میگیم نه اینا اینطور اینه نداشته به زنون عمل کردی اینا خروج از محل نزایه با فرض اینکه اینها به قطعشون عمل کردن این که؟ مستشکر... حالا من شبهاتش در بعضی از موادر هم دیدم که اینا میگن او اینا قطع داشتن مگه خودتون نمیگه قلب خود کیت داره چرا اینا معذول نباشن؟ وقتی مهممین میدن این شبهات رو الغا میکنن با جواب بدی دیگه؟ با فرض اینکه اینا قصد داشتن داریم جواب میدیم. این کاشفیت مفید نیست. من باید تعینیتش رو بگیریم. و اگر کاشفیت ذاتی ملاظ باشه، باید قصد موضوعیت داشته باشه، یعنی عذر عقلی باشه، قاتل محذور باشه، مطلقا. عذر عقلی یعنی چی؟ این حدثه عقلی یعنی معذوریت عقلی. یک چگی از نظر عقلی حجت باشه یعنی شخص معذور از نظر عقلی معذور از نظر عقلی یعنی, یعنی معذوریت بیغیر شرط من معذور هر قلطی رو میتونم بکنم معذوریت بیغیر شرط رو میگن معذوریت عقلی که معنای حجیت عقلیه حجیت عقلی از کجا اومده؟ از کاشفیت قد بنابراین میار اگه کاشفیت باشه یعنی عذر مطلق و هر شخصی معذور مطلق یعنی معذوریتی بیغید و شرط هر شخصی هر کاری میتونه از بده. اگه نمیتونید قبول بکنید قایل بشید به اینکه میار کاشفیت باید عذر اغلایی باشه عذر اغلایی به چی میگن؟ عذری که نشأت میگیرد از حدیت اغلایی حدیت و قلایه چیه؟ در یک تعبیر خیلی خیلی راحت یعنی مقتضی عمل باشه قد حدیتی یعنی چی یعنی مقتضی عمله نه علت خامه عمل مقتضی برای عمله برای ابن ملجم 99 درصد مقتضی بود این کار بکنه یک درصد اختیار خودش یک درصد یک هزارم درصد هسته بقیه شما محکول میکنیم به حساب کرد. برای یک درصد با در اختیار خودش هست یا نیست پس و یعنی معذریت و منطقیزیتی که مشهور میگن یعنی مسئولیت و محضوریتی که ما گفتیم بنابراین عذر و قلایی عذر مشروطه عذر مشروط رو میگن عذر و غلائی. شما تا مسئولی محضوری تا مسئولی محضوری و اگر یک عذری باشه بدون مسئولیت، من کارهای غیر مسئولانه بخوام بکنم اینو بکشم اونو بکشم این کار انجام بدم و جوابو نباشم هر عملی هر عملی اقیق اگر با روح نفع مسئولیت و تکلیف باشه عذر زب نمیشه و اینا تو جزبه نوشتم صفحات افولم آموردن گذاشتم یعنی خیلی از این صفحات که الان آخر بهش ملحق شده زفیز و چهارم رو آقایی با دقت بخونن همین حرفایی که الان زدم اونجا اومده و هیچ شبهه هم درش نکنید در قومه مطالب کلامی فضلطفی و اصولیه مول را درزش نمیره یعنی کسی مقاد در اینا شبه کنه در همه چیز بایدی که شبهه کنه مجالی برای شبهه نیست شبه تحریمیه میشه کسی مقاد در اینا شبهه کنه در اینا ش نه نه من الان همینه که الان همینه که در صفحه 3 و 4 آوردم نوشتم این رو از سال هشتاد از سال هشتاد قائل بودم الان همون هم آوردم برای شما تسجیلش کردم و شما بخونید تا موانی معلوم بشه ما معنای حسیت و رو چی گرفتیم مختزی عمل مذوریت با معذوریت که بر به یک لونی به همون منطقیت و مؤثریت. حالا چرا این خودش نیست؟ آنها معذوب میشن شما. آیا شرط در نظر اقلیه دیگه؟ میدونم پوزر اقلیه. آنها نوشتم آره پوزر اقلیه. مرکب است. آره پوزر اقلیه. شاید مثل ادابش کم بشه پوزر اقلیه. همین اینا نوشتم تاب آره این آقایین یکی از آقاین تکیلش کنه حالا یا به صورت نرمافزارری یا به صورت سختافزارری تا قذیلی آقا یه زحمت بگی شماره بزن به همین ت شماره بزن. آره به همین می از روی چهلومی. اون از اون حاجی